جن فصل بخش دوم ترین روایت از راه برد سعادت خانوادگی چنین است ماده نر را برانداز می کند و سعی می کند نشانه ها ها از وفاداری و دلبستگی او به خانه و زندگی در او بیابد یقینا همه نرهای آن جمعیت از نظر آمادگی برای اینکه شوهر وفاداری بشوند یکسان نیستن اگر مادهها بتوانند این خصوصیت را پیش تشخیص دهند با انتخاب همسری که از آن برخوردار است به نفع خود عمل کردند یک راه برای ماده این است که اول کار مدتی خود را سنگین دارد و ناز و اشفه کند هر نری که صبوری لازم را برای کشیدن ناز او تا رسیدن به زمان رضایت به جفتگیری نداشته باشد احتمالا شوهر وفاداری نخواهد بود با اصرار روی یک دوره طولانی نامزدی ماده از خواستگاران دیگر خود چشمی پوشد و فقط با آن نری که وفاداری خود را پیشاپیش اثبات کرده آمیزش می کند نازو هیای جنس موننس در واقع در بسیاری از حیوانات دیده می شود همانطور که قبلا هم دیدیم یک نامزدی طولانی میتواند به نفع مرد هم باشد چون او را هم از این خطر که بزرگ کردن بچه نر دیگری به گردنش بیفتد میرهاند مراسم معاشرت قبل از ازدواج اغلب شامل سرمایه های قبل از آمیزش از طرف نر است ماده ممکن است به آمیزش رضا ندهد مگر وقتی که نر برایش ای ساخته باشد یا او را به اندازه کافی تقضیه کند البته از نظر آن ماده این کار بسیار خوب است اما روایت دیگری هم از راهبرد سعادت خانوادگی ممکن است وجود داشته باشد آیا ماده می تواند نر را مجبور کند در دوران قبل از آمیزش آنقدر سرمایه گذاری کند که بعد از آن دیگر برایش به نباشد که بگذارد و برود فکر جالبیست نری که حوصله می کند تا بالاخره ماده راضی به جوفتگیری با او شود دارد حزینهی صرف می کند او از موقعیت آمیزش با ماده های دیگر چشم پوشی و انرژی و وقت زیادی را صرف جلب محبت آن ماده می کند بلاخره زمانی که اجازه نزدیکی به آن ماده مورد نظرش را دریافت می کند به ناچار خود را کاملا به او اختصاص میدهد. وقتی میداند بعد از این هم به هر ماده نزدیک شود باید همین تشریفات و امروز و فردا کردنها تی شود تا به اصل موضوع برسد دیگر انگیزه چندانی برای ترک او ندارد همونطور که در مقاله ای نشان دادم در اینجا در استدلال تریورز اشکالی وجود دارد. او فکر می کند سرمایه گذاری اولیه هست که فرد را وادار می کند برای آینده هم سرمایه کند. این از نظر اقتصادی بیپایه است. هرگز یک اهل تجارت نمیگوید چون قبلا فلان قدر مثلا در یک شرکت هواپیمایی مثل کنکور سرمایه گذاری کرده ام، دیگر نمیتوانم کنار بکشم در عوض همیشه حتی اگر قبلا سرمایه کلانی را صرف کرده باشد میخواهد بداند آیا برایش بهتر است جلو ضرر آینده را بگیرد و از خیر آن برنامه بگذرد به همین ترتیب اینکه مادی بخواهد نری را مجبور به گذاری زیاد کند به این قصد که او نتواند بعدن خودش را کنار بکشد کار بیهوده است این روایت از راهبرد سعادت خانوادگی به یک فرض مهم دیگر بستگی دارد و آن این که باید اتنینان داشت که اکثریت ماده همین روش را در پیش می گیرند. حالا اگر ماده ها ای در آن جمعیت باشند که به نرهای جفت رها کرده روی خوش نشان دهند آن وقت برای نرها می که جفت خود را رها کنند مهم نیست چقدر برای بچه ها مایه گذاشته باشند بنابراین بیشتر به این بستگی دارد که رفتار اکثریت ماده ها چطور باشد. اگر ما نقشه چینی های پنهانی ماده ها را منظور کنیم مشکلی وجود نخواهد داشت اما این نقشه ماده ها از نظر تکاملی بردی ندارد چرا که در فصل پنجم هم دیدیم که راهبرد کبوتر راه به جایی نمیبرد. در عوض ما باید دنبال یافتن راهبرد هایی باشیم که از نظر تکاملی پایدارند بگذارید از روش تحلیل که مینارد اسمیت در مورد رقابت های به کاربرد استفاده کنیم و آن را در مورد نر و ماده به کار ببریم این قضیه کمی تر از مورد اقاب و کبوتر است زیرا ما دو راهبرد برای ماده و دو راهبرد برای نر خواهیم داشت همانطور که در بررسی مینارد سمیت آمده بود واژه راهبرد به برنامه یک رفتار ناآگاهانه و غیرهدفمند هدفمند اطلاق می‌شود دو راهبرد مربوط به ها، با حیا و هرزه نام دارد و دو راهبرد مذکرها وفادار و هوسباز نامیده می‌شود این چهار قاعده رفتاری به قرار زیر است. ماده با با نری آمیزش نمی‌کند، مگر پس از مدت طولانی. شاید چند هفته قبل از آن را به ناز و بازارگرمی گرمی گذرانده باشد. ماده هرز فوری با هر نری جفت می شود. نرهای وفادار حاضرن مدت زیادی به معاشرت قبل از آمیزش بگذرانند و بعد از جفتگیری با آن ماده بمانند و در بزرگ کردن بچه ها یاورش باشند. نرهای حوثباز زود حوثلشان سر می رود. اگر ماده با آنها آمیزش نکند میروند دنبال ماده دیگری می افتن. بعد از آمیزش هم مثل پدرهای خوب نیستند که پیش آن ماده بمانند بلکه دنبال ماده های تر و ترند. همانطور که در مورد راهبرد برد و اقاب کبوتر بود اینها تنها راهبردهایی ممکن نیستند با وجود این بررسی سرانجام کار تا حدی قضیه را روشن می کند. ما از یک مقدار دل بخواهی فرضی برای تعیین هزینه ها و منافع استفاده میکنیم در صورت کلی میشود آنها را با علایم جبری نشان داد ولی فهمیدن اعداد راحت تر است فرض کنید وقتی بچه‌ای با موفقیت بزرگ شود بازده جنی برای هر والد او به اضافه 15 باشد هزینه بزرگ کردن بچه همه غذایی که خورده همه زمانی که صرف نگهداری شده و همه خطرهایی که به خاطر او والدش پذیرفته روی هم منهای بیست باشد. این هزینه منفی از را توسط والد پرداخت می شود. حزینه ها در رفتن وقت در دوران طولانی نامزدی هم منفی است. آن را هم منهای سه واحد در نظر بگیریم. فرض کنید جمعیتی داریم که در آن همه ماده ها با حیا و همه نرح و وفا دارند. این یک جامعه تک همسری مطلوب است، در هر زوج متوسط بازدهی نر و ماده برابر است. هر بچه که بزرگ کنند برای آنها به اضافه پانزده امتیاز دارد. هزینه پرورش منهای بیست بین آنها مساوی تقسیم می شود و برای هر کدام منهای ده است. هر دوی آنها برای تلف کردن وقت در دوره طولانی نامزدی با امتیاز منهای سه مجازات می شود. بنابراین به طور متوسط بازده هر کدام می شود به اضافه 15 پونزده، منهای ده، منهای سه، مساویس با به اضافه دو. حالا فرض کنید یک ماده مجرد هرزه وارد جمعیت شود. کاروگارش خوب خواهد بود. هزینهای برای معطلی نمی پردازد. زیرا اهل نامزدی طولانی نیست. از آنجا که همه نرهای جمعیت باوفایند، او با هر کس که جفت شود، پدر خوبی برای بچه پیدا کرده است. متوسط بازده او برای هر بچه 15 منهای ده مساویس با به اضافه 5. سه امتیاز از رقیبان با حیای خود پیشتر است. بنابراین ژن هرزه بودن سریع پخش می شود. اگر موفقیت ماده های هرزه چنان زیاد باشد که حاکمیت فراگیر به دست ایشان میافتد در اردوگاه نرها هم اوضا تغییر می کند. تا اینجا نرهای وفادار یک امتیاز انحصاری داشتند. اما حالا اگر یک نر هوسباز در آن جمعیت پیدا شود، کاروبار او بهتر از رقیبان باوفایش خواهد بود. در جمعیتی که ماده های آن همه هرزه اند، یک نر هوسباز مورد زیادی برای انتخاب دارد. اگر بچه با موفقیت بزرگ شود، به او به اضافه پانزده امتیاز میرسد بدون اینکه هیچیک از این دو هزینه دیگر را پرداخته باشد در کل نپرداختن آن دو هزینه برای او به این معنی است که آزاد است فرار کند و با ماده های جدیدی روی هم بریزد هر یک از زوجههای نامراد او تنهایی با بچه خود سر و کله می زند و همه هزینه منهای بیست آن را میپردازند هرچند از او هم بابت اطلاف وقت دوره نامزدی امتیازی کم نمیشود. شود. ماده هرزهی که با مرد هوسباز جفت شود، بازدهش پانزده منهای بیست مساوی منهای پنج خواهد بود. بازده خود آن هوسباز به اضافه پانزده است. در جمعیتی که همه ماده ها هرزه اند، جنهای نرهای هوسباز مانند آتش سرکش سریع پخش می شوند. اگر آن هوسبازها ها آنقدر با موفقیت زیاد شوند که در بخش نرهای جمعیت به حاکمیت برسند زنان هرزه در بد مخمسه خواهند افتاد و هر ماده با حیائی امتیاز بارزی خواهد داشت اگر یک ماده محجوب به مرد هوسبازی بر بخورد، حاصل کار هیچ است ماده روی نامزدی طولانی پافشاری می کند، نر حوصله نمی کند و دنبال ماده دیگری می رود. هیچ کدام هزینه اطلاف وقت را نمی پردسند. به هیچ کدام هم چیزی نمی رسد، چون بچه ای تولید نشده است. به این ترتیب، در جمعیتی که نرهایش همه حوث بازند، امتیاز ماده با حیا صفر است. ممکن است صفر عددی به شمار نیاید، ولی از منهای پنج بهتر است که میانگین امتیاز برای ماده های هرزه است. حتی اگر ماده عرضه تصمیم بگیرد بعد از اینکه جفت حوض او را رها کرد، بچهش را ترک کند با وجود این به اندازی یک تخمک گرانبه ها هزینه کرده است. بنابراین در آن جمعیت ژنهای باحیا دوباره رو به افزایش میگذارد. برای تکمیل این چرخه فرضی وقتی تعداد ماده های باهیا آنقدر زیاد شود که فراگیر باشند نرهای بی بندوباری که با ماده های بی غید و بند ایام را به خوشی می گذرانند کم کم احساس می کنند در مزیقه هند یکی بعد از دیگری اصرار به نامزدی طولانی دارند و نرهای حوثباس از مادهی به مادهی دیگر پناه می برند. و همه جا جواب یکی است. وقتی همه ماده ها باهیا باشند، بازدهی خالص برای نر حوض صفر است ولی اگر تنها یک نر با وفا پیدا شود او تنها کسی است که ماده با باهیا با او میآمیزد بازده خالص او به اضافه دو و بهتر از بازده مردان حوض باز است. بنابراین، این جنهای وفاداری رو به افزایش میگذارد و به این صورت چرخه ما کامل می شود. همانطور که در تحلیل پرخوشگری دیدیم این داستان را طوری تعریف کردم که انگار یک نوسان بیپایان است. اما باز مثل همان مورد میتوان نشان داد که نوسانی در کار نیست. این نظام به سوی یک وضعیت پایدار میل می کند. اگر محاسبه را انجام دهید معلوم میشود جمعیتی که پنج آن را مادههای های باحیا و پنج هشتم را نرهای وفادار تشکیل دهند از نظر تکاملی با صحبات است. البته این محاسبه فقط برای آن اعدادی است که ما در ابتدا به صورت قرارداد تعین کردیم. اما به میشود می شود برای هر فرض دل بخواه دیگر نیز نسبت پایدار را به دست آورد لزومی ندارد که دو نوع ماده متفاوت و دو نوع نر متفاوت را در نظر بگیریم در تحلیل های مینارد همچنین نبود اگر هر نر را در پنج هشتم از زمان وفادار و بقیه را حواسپاز و هر ماده را در پنج ششم از زمان با حیا یک ششم آن هرزه در نظر بگیریم ای به همان اندازه پایدار خواهد بود این ایاس را به هر شکل در نظر بگیریم چنین مفهومی دارد برای اعضای هر یکی از دو جنس هر گرایش به انحراف از آن نسبت مناسب با ایجاد یک تغییر بعدی در نسبت راهبردی جنس مقابل مورد تنبیه قرار گیرد که آن هم به نوبه خود آن ضرر را به منحرف شونده اولیه برمیگرداند بنابراین آن وضعیت پایدار حفظ می شود. می توانیم چنین نتیجه بگیریم که هر جمعیتی که عمدتا شامل ماده های و نرهای وفادار باشد، یقینا در جهت تکامل پیش می رود. در چنین شرایطی، راهبرد برد سعادت خانوادگی واقعا برای ماده ها مفید است. لازم نیست که بحث توانی و نقش چینی ماده های را مطرح کنیم. باحیا در واقع برای جنهای خودخواه یک ماده منفعت محسوب می شود. مواد به شیوه های مختلف میتوانند این راهبرد را عملا پیش ببرند. قبلا پیشنهاد کردم ممکن است یک ماده از آمیزش با نری که قبلا لانه برایش نساخته یا حداقل در ساختن لانه یاور او نبوده از خود دادی کند. در واقعیت قضیه از این قرار است که در بسیاری از پرندگان تک همسر آمیزه صورت نمیگیرد مگر اینکه لانه ای ساخته شده باشد. مفهوم این امر این است که در لقاح جفتگیری آن نر غیر از اسپرم های ناقابل تا ای از چیزهای دیگر هم مایه گذاشته است تقاضای ساختن لانه از همسر آینده یکی از راههای موثر است که ماده برای گیرانداختن نر به کار میبرد. می شود اینطور به حساب آورد که بر این اساس می تواند هر چیزی باشد که هزینه زیادی روی دست نر بگذارد حتی اگر آن هزینه مستقیمی برای بچه به دنیا نیامده باشد. اگر تمام نرها را مجبور کنند، کار سخت و ای مثل کشتن اجده یا سعود به فلان قلده را انجام دهند تا اجازه آمیزش را دریافت کنند، از جنبه نظری میتواند وسوسه یا آن نرم برای ترک کردن ماده بعد از جفتگیری را کاهش دهد. هر نره که در فکر ترک جفت خود است و می با ماده دیگری دست به کار پراکندن جنهای خود شود، این تصور که باید اجده های دیگری را بکشد، او را منصرف می کند. اما در عمل، احتمال اینکه که ماده ها چنین کارهای قرار مثل کشتن اجده یا رفتن دنبال جام مقدس را به خواستگارهایشان تحمیل کنند، زیاد نیست. به این دلیل که یک رقیب آن ماده که خاصه کم زحمت داشته باشد به طوری که کار مرد نظر بیشتر به درد خود و بچه هایش بخورد دارای امتیاز است نسبت به آنهایی که ذهن رومانتیکی دارند و انجام کارهای بی را به نشانه عشق از خواهان خود طلب می کنند شاید ساختن لانه مانند کشتن اژدها یا شنا در تنگی داردانل عاشقانه و رؤیایی نباشد ولی فایدهش از آنها بیشتر است کاری که قبلا ذکر کردم، یعنی قضا گذاشتن در دهان ماده در دوران نامزدی نیست، برای ماده خالی از فایده نیست. این کار اغلب در پرنده ماده نوعی بازگشت به دوران کودکی محسوب می شود. او با حالتی مانند یک جوجه پرنده آن را از نر تقاضا می کند. این کار را برای پرنده نر خوشایند دانسته به همان ترتیب که برای یک مرد دیدن لبهای قنچه شده، یا نخ زبانی حرف زدن یک زن بزرگ دلپسنده است. آن پرنده ماده در آن زمان به تمام آن غذای اضافی که میگیرد نیاز دارد زیرا در حال ذخی سازی تا بتواند تخم های درشت خود را تولید کند. تغذیه ماده توسط نر در دوران نامزدی احتمالا نشان دهنده سرمایهگذاری مستقیم نر در خود تخم است. و نتیجش این است که تفاوت نخستین سرمایه های دو والد روی بچه را کم کند. همچنین بعضی حشرات و عنکبوت‌ها پدیده تغذیه دوران قبل از آمیزش را به نمایش می‌گذارند. از آنجا که مثل مورد آخندک نر در معرض این خطر است که توسط جفت خود که دورشت‌تر از خورده شود، هر کاری که بتواند اشتهای ماده را کم کند به نفع نر است. به یک معنای ترساوی آخونده که نر بیچاره قربانی فرزندانش می شود. به عنوان قضا مورد استفاده قرار می گیرد تا به ساختن تخمهایی که بعدا توسط اسپرمهای ذخیره شده خودش بارور خواهد شد کمک کرده باشد. هر ماده که اهل راهبرد خانوادگی است و فقط نرها را برانداز می کند و سعی دارد پیشاپیش پیش, پیش ویژگی های حاکی از وفاداری را در آنها تشخیص دهد خود را در معرض فریب قرار می دهد. هر نری که خود را یک مرد پابند به خانواده جلوه دهد اما در واقع بر روی گرایش شدید به رها کردن و بیرفایی سرپوش گذارد میتواند از امتیاز زیادی برخوردار شود اگر زنهای قبلی که او آنها را ترک کرده بتوانند بچه ها را بزرگ کنند آن مرد هوسباز در مقایسه با رقیبی که شوهر و پدری درستکار است ژنهای بیشتری را منتقل میکند در خزانه ژنی به جنهای ارجهیت داده می شود که مربوط به مردان گول زن است. انتخاب طبیعی برعکس آن مادههایی را ترجیح میدهد که این فریب را تشخیص دهند. یک راهشانین است که در دوری معاشرت قبل از ازدواج با یک نر جدید کاملاً حواسشان جمع باشد. اما در فرستهای بعدی زادآوری کاملاً آماده پذیرش پیشروی جفت سال قبل باشند. این کار خود به خود نرهای تازهکاری را که اولین فصل زاد و ولد خود را تجربه می کنند سر جای خود مینشاند چه هلی زدن باشند و چه نباشند بچههایی که ماده بینوا در فصل اول تجربه خود به دنیا می آورد احتمالا نسبت بالایی از ژنهای پدر بیوفا را خواهند داشت اما در سالهای دوم و سالهای بعد عمر مادران و پدران وفادار دست و بالا را دارند زیرا مجبور نیستند دوباره آن مراسم طولانی و پر دردسر نامزدی را پشت سر بگذارند اگر اکثر افراد یک جمعیت بچه های مادران با تجربه باشند نه مادران خام یک فرض منطقی در گونه دراز عمر ژن پدر خوب و درستکار بودن در خزانی ژنی آن فراگیر خواهد شد برای اینکه مطلب را ساده کنم من نر را طوری در نظر گرفتم که یا کاملا درست کار است یا کاملا فریبکار در واقعیت به احتمال زیاد در همه نرها، در واقع همه افراد کمی فریبکاری وجود دارد زیرا طوری برنامه ریزی شدن که با بهرهگیری از فرصتها از جفتشان سو استفاده کنند. انتخاب طبیعی توانایی هر شریک را برای یافتن عدم وفاداری در دیگری چنان تیز کرده که به فریب کاری های در مقیاس بزرگ میدان چندانی داده نمی شود. نرها از دقلکاری سود بیشتری میبرند تا ماده ها. و ما باید این انتظار را داشته باشیم که حتی در گونه‌هایی که نرد و حدی ایسارگری پدرانه بروز می‌دهد تمایل او به کار کردن کمی کمتر از گرایش ماده ها با آن باشد و آمادگیش برای در رفتن کمی بیشتر از ماده ها باشد این حالت در پرندگان و پستانداران وضعیت عادی محسوب می‌شود اما هایی وجود دارند که در آنها نر واقعا بیشتر از ماده برای نگهداری از جوجه کار می‌کند در میان پرندگان و پستانداران چنین مواردی از التاف پدری به طور استثنایی کم است اما در میان ماهیان این وضعیت بیشتر دیده می‌شود علت چیست این یک چالش برای نظریه ژن خودخواه مصحوب می می‌شد که مدت‌ها را به فکر وا بود اخیرا یک راه ابتکاری برای آن توسط خانم تر کارلایل پیشنهاد شده است او به صورت زیر از مفهومی استفاده می‌کند که آن را به عنوان ظلم بی هدف بیان کرده است. بعضی از ماهی ها آمیزش نمی بلکه فقط سلول جنسیشان را در آب رها می کنن. باروری درون اون آب آزاد صورت می گیرد. نه در بدن یکی از دو شریع. اعتمالاً تولید مثل جنسی در ابتدا چنین شروع شده است، از طرفی حیواناتی که روی زمین هستند مثل پرنده ها و پستانداران و خزنده ها نمی توانند این نوع باروری خارج از بدن داشته باشند زیرا سلول جنسیشان نسبت به خشک شدن بسیار آسیب پذیرند زامه های یک جنس، جنس نر زیرا اسپرما حرکت دارند وارد محیط مرتوب عضو آن جنس دیگر ماده می شوند. تا اینکه که واقعیت آشکاریست حالا می رسیم به نظر او بعد از جفتگیری مادهی که روی زمین زندگی می کند. از نظر جسمی حامل رویان است جنین درون بدن اوست اگر او آن تخمک بارور شده را تقریبا همان لحظه رها کرده باشد باز نر این فرصت را دارد که تصمیم به فرار بگیرد و ظلم بی هدف تریورز را بر او تحمیل کند و او را مجبور کند که بین رها کردن بچه و مرگ حتمی او یا ماندن و بزرگ کردن و او یکی را برگزیند. بنابراین در بین موجودات زمینی مراقبت مادران از مراقبت پدران معمولتر است. اما برای ماهی ها و دیگر جانوران آبزی اوضاد طور دیگری است. اگر نر با جسم خود اسپرم را وارد به جسم جانور ماده نمی کند به این معنی نیست که مادر را رها کرده تا بچه را نگه دارد. هر یکی از دو شریک می تواند با گرفتن یک مرخصی کوتاه مدت آن دیگری را با های تازه بارور شده تنها بگذارد اما برای اینکه چرا نر بیشتر در معرض تنها ماندن با تخم ها قرار می گیرد دلیلی وجود دارد به نظر می رسد احتمالا بر سر اینکه کدامشان اول سلول جنسی خود را رها کند رقابتی پیدا می شود شریکی که زودتر این کار را بکند از آن امتیاز برخوردار می شود که بتواند رویانها را رو به آن دیگری بسپارده برود. از آن طرف آنکه اول تخم را رها کرده در معرض این خطر است که شریک مرده نظرش نتواند بعد از دنبال کار را بگیرد و همان کار را انجام دهد در اینجا نر آسیب پذیر است زیرا اسپرم ها سبکتر از تخمک هستند و بیشتر احتمال دارد گم و گور شوند اگر ماده ای خیلی زود تخم بریزد، یعنی قبل از آن که نر آماده باشد، چندان اشکالی پیش نمی آید. چون تخمک ها که به نسبت بزرگ سنگینند، احتمالا مثل یک توده منسجم تا مدتی به هم می بنابراین هر ماهی ماده می تواند خطر کند و اول تخم بریزد. ولی ماهی نر تن به این خطر نمی دهد. چون اگر قبل از آماده شدن ماده اسپرمایش را رها کند، آنها در آب پراکنده می شوند. و این وقت ماده دیگر تخنویزی نمی کند. چون این کار برای او به زحمتش نمیارزد به خاطر مشکل پراکنده شدن اسپرم ها نر باید سبت کند تا ماده آماده شود. بعد اسپرم خود را روی ها بریزد. اما برای ماده چند ثانیه فرصت مختنمی است که ناپدید شود و نر را با ها تنها بگذارد تا بر سر دراهی تریورز گیر کند. این نظریه به این ترتیب خیلی روشن توضیح می‌دهد چرا مراقبت پدرانه در آب معمول و در خشکی کم است. ماهر رها می کنیم و برمیگردیم به دیگر راهبردهای اصلی مادهها یعنی راهبرد هیکل مردانه در گونه‌هایی که ماده‌ها این سیاست را پیش می‌گیرند. نتیجه این می‌شود که قانع می‌شوند از پدر بچه‌شان کمکی دریافت نکنند و در عوض در تمام سال دنبال مال خوب بروند. بار دیگر از سلاح امتناع از آمیزش استفاده می کنند. با هر نری نمی آمیزند و قبل از دادن اجازه جفتگیری به نر بیشترین دقت و احتیاط را به عمل میآورند. آبرند. بیشک بعضی نرها بیشتر از بقیه داره جنهای خوبند. جنهایی که بتواند بقای دختران و پسرانشان را بیشتر تضمین کنند. اگر یک ماده به با استفاده از نشانه های قابل مشاهده از خوب بودن های یک نر سر درآورد می تواند با پیوند های خود با آن ژن خوب پدری به نفع های خودش عمل کرده باشد. با استفاده از قیاس گروه های پاروزن ماده می تواند این احتمال را که جنهایش همسفر رفیق ناجور شوند را به حداقل اقل برساند. اما می تواند هم قایقی های خوبی را برای جنهای خودش دستشین کنند